من سال 2010 اومدم ایران تا به امروز 8 <تصفح> سال تقریبا میشه گفت. دورهای مختلف NBA رو خب تدریس کردم تو مؤسسات مختلف خیلی تعداد زیاد. مثلا تو مؤسسه مشاوره شاپ 20 تا دوره. ماه ها نمیدونم 7 تا دوره. ولی اینجا این کلاس و یه کلاس دیگه هم روز پنج شنبه است. MBA تازه شروع شده؟ بله, بله. تازه که دو, دو ماه. ماهه. با دو تا کلاس کلاس‌های خیلی خوبیه. یعنی من م... آره آره دانش‌پذیرها خوب متمرکز هستن، مطالعه میکنن. می‌بینم پیگیری میکنن. ارتباطاتی که با خودشون دارن، با مؤسسه دارن و اساتید دارن. خیلی مثلا کلاس شما جزو کلاس‌های خیلی خوبه. حالا ما این مدیریت استراتژیکو ما میاد که در حقیقت بیام به معرف معروف بگم چون میدونم درس فقالاده با اهمیتیه اه این جلسه که حالا نه یه مقدار میمونه ما جلسه آیندهم باز یه جلسه دیگه میمونه برای بحث مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیکو رو تموم میکنین و همجای که من جلسه هم دارم خدمتون گفتم یک جلسه من میام حالا زمانش میتونه نمیدونم دو تا سه ساعت شاید بتونه جمعش بکنی که من ساختار پروژتون رو بهتون بگم که رو بعد پروژتون رو بنویسید و شروع کنید به نوشتن پروژتون و مستحکمانه با خود من از خود من مشاوره بگیرید من پنج ها و جمعه صبح هستم مؤسسه حالا میتونید بادیفاد هماهنگ کنید تو پنج شنبه من ظهر به بعد هستم ساعت دو سه به بعد هستم جمعه صبح هم هستم تا ظهر برای بحث پروژه پایانیتون بیایید و مشاوره بگیرید یعنی اون تو من اول یک جلسه گایدنس و خدمتتون میگم چارچوب و خدمتون میگم که چه جوری بعد پروژهتون رو بنویسید بیاید پروژتون رو بنویسید که بعد برید امتحاناتتون رو بدید امتحانات سطح 1 سطح 2 و سطح 3 خیلی ساده امتحان هیچ مشکل خاصی نداره اون تو ماده بیسری سیکونس برای سپتنوا پیراماس صحابی نکنه براتون و بعد پروژه پایانیتون ا متبر پروژه پاینت رو با دفاع بکنید که ساده است کار خاصی نداره مطممن ساختار خدمتتون میگم که برید جلو من می‌خواستم یه کانداش بشه که یه چیزی داشته داشت. باشه به تعطیلات بتونید جواب‌دهی بکنید یعنی یه سوالیاتی رو بکنید اگه چیزی الان یه ساختارش رو اینو نگه دارین چون ما با هم هستی بله. پیشنهاد داد در حد پیشنهاد می‌تونیم اینو نگه داریم بریم سراغ اون که بهترین کو تعلقات این انجام بدیم. دوباره آه نه نه نه من اجازه بدیم نه استراتژی رو تمام مشغول ساختار و دستتون بیاد. متوجه ای. الان اول بارده فانشن استراتژی که میشیم اجرای استراتژی بزن. قشنگ بسته بشه مدیریت استراتژی بعد. باشه در ایامت می‌خواهید مطالعه بکنی ها ما علی متعالی بختی سلام می کدم مدیریت استراتژیک رو مطالعه کنید مطالبه مطالبه بله نیمه <تصفح> نوعی که من خدمتتون دادم سمپل هایی که بهتون دادم درات با اسناد استراتژیک سندهای استراتژیک سازمان های سازمانهای مختلف و دقیقاً سیکونس همین سیکونسی که من خدمت ما جلسه اول توضیح دادم دستتون بیاد که من می خوام واقعا اون بحث مدیریت استراتژیک مسلط بشید شما اگر با مدیریت استراتژیک مسلط باشید شما هم سند استراتژیک میتونید بنویسید هم طرح بازاریابی میتونید بنویسید متوجه هستید و به عبارت ریزی و اجرا رو قشنگ دستتون میاد هم توسعه استراتژی هم توسعه بازاریابی <تصفح> البته <تصفح> حالا من توی پروژه پایانیتون نگران نباشید این درس که دستتون بده و درستی که تو علاقه کنید به راحتی میتونید پروژه تون خب وارد بحث بعدی مون بشیم فانکشنال level استراتژی ببینید بریم سراغ ماتریس مدیریت استراتژیک خب ماتریس مدیریت استراتژیک به سه لول تقسیم میشه استراتژی کلان شرکتی خب استراتژی تجاری ببینید دوستان، همون که من خدمتتون جلسه اول گفتم استراتژی یعنی راه رسیدن به هدف هدف هر سازمانی رسیدن به چشم و رسالت سازمانی درسته چشمنداز و رسالت سازمانیه های کلان شرکتی یا کوپر لول استراتژیز ما خدمتتون گفتیم بیزنس لول استراتژیز خدمتتون گفتیم و اینا راه های رسیدن به هدفه یعنی به عبارتی به عبارتی این دو می میشود برنامه ریزی استراتژیک خب برنامه ریزی استراتژیک یعنی قسمت پلانینگ در حقیقت در این دو تا لایه به وجود میاد اگر یادتون باشه جلسه اول من گفتم که استراتژی یک برنامه تعاملیه خب یک برنامه تعاملیه خب در پله اول شما پلین دارید درسته؟ درسته یعنی برنامه ریزی. در پله دوم بحث دوین دارید یعنی اجرا خب؟ و پله سوام بحث کنترولین <تصفيق> <"Controlling"> دارید درسته؟ <تصفيق> یعنی کنترل خب؟ یعنی کنترل برنامه ریزی، اجرا و کنترل این برنامه ریزی رو بهش میگم برنامه ریزی تعاملی خب؟ که من جلسه اول گفتم تا مدیریت استراتژیک سه فاز داره برنامه ریزی اجرا و کنترل خببحث برنامه ریزی استراتژیک دوست عزیز برمیگرده به این دو که ما تا به امروز خدمتون توضیح دادیم برنامه ریزی استراتژیک خب وقتی شما برنامه ریزی کردین مسلما باید مسلما با باید وارد چی بشی؟ وارد اجرا بشی درسته وارد اجرا بشی ساعتگرده در جهت ساعت داره حرکت میکنه وارد اجرا و بعد وارد بحث کنترل بشید. اجرا و کنترل استراتژیک یعنی این دو عامل متوجه است، برمیگرده به سمت لایه سوم از این مثلث. برمیگرده به لایه سوم از این مثلث که لایه سوم از این مثلث رو ما بهش میگیم استراتژی‌های وظیفه‌ای. خب استراتژی‌های وظیفه‌ای درسته؟ یا برنامه ریزی تاکتیکی, تاکتیکی. خب؟ که اسم از فانکشنال لبل استراتژی یعنی اجرا و کنترل استراتژی میشه استراتژی‌های وظیفه‌ای برنامه ریزی تاکتیکی اینو که ما سوم داریم، اینه که هرآن چیزی رو که برنامه ریزی کردیم، دلایل اول و دومه، این مسلس استراتژی حالا در سازمان بعد اجرا کنیم و کنترل انجام بدیم. نکته بسیار بسیار بسیار مهم از این قضیه خب اینه که برای اجرا و کنترل استراتژی برای اجرا و کنترل استراتژی ابزارهای مختلفی وجود داره. اینه که خب ما برنامه‌ریزی کردیم حالا رو باید اجرا بشه در سازمان. ابزارهایی که در این راستا وجود داره یکی BSC بنز اسکور کارت یا کارت ارزیابی متوازن خب کارت ارزیابی متوازن درسته یکی ساختار سازمانیه ساختار سازمانی برای اجرا و کنترل خب چون شما الان چیزی که برنامه برنامه‌ریزی کردی اگه ساختار درستی در سطح سازمان داشته باشی معماری درستی در سطح سازمان نداری نمیشه اجرا کنیم تو کنترلش کنیم خب پس ساختار سازمانی هم یه ابزار برای اجرا و کنترل استراتژیک و ابزار سوم شما رهبری خب یا استراتژی رهبری در سطح سازمان به علاوه یک ابزار دیگه برای اجرا و کنترل و ابزارهای دیگه‌ای هم وجود داره. منتهای مراتب ما تو این کلاس متمرکزیم روی بالانس اسکور کارت به عنوان یک ابزار بسیار مهم و کلیدی در سطح سازمان ها بسیار مهم و کلیدی برای اجرا و کنترل و بحث ساختار سازمانی را ما خدمتتون توضیح میدیم که حالا اینی که شما وقتی برنامه ریزی انجام بدهید چیکار جا باید بکنید در سطح سازمالیت در ابتدا من از بلنس اسکول کار شروع می دقت دقیق بکنید ماکر پورتر پروفسور هاربارد بیزینس اسکول میگه استراتژی انجام کارهای متفاوت از گذشته و یا انجام همان کارها به شیوه متفاوت است دویی activities differently or doing different activities. خو؟ خب. اوه فرد دیوید تئوریشان دیگه مدیریت استراتژی. و اکثر کتاب های مدیریت استراتژی که دانشگاه در ایران کتاب فرد دیویده مدیریت استراتژیک فرد دیویده. که خب. این کتاب هم حالا میتونه خریداری کنه و یه رفرنس داشته باشید دیگه نیست. میگه مدیریت استراتژیک خونه و علم تدوین اجرا و عرضیابیه. تصمیمات همه جانبه به منظور توانمندسازی سازمان در در به اهداف اساسی مورد نظر است میگه مدیریت استراتژی که میتونید برنامه ریزی کنیم و بعد بتون یه روشی برای اجرا و کنترل اون برنامه ریزی سطح سازمان داشته باشیم و این از طریق هنر و علم انجام میشه آن چیزیره که ما خدمت شما گفتیم تا به امروز علم مدیریت استراتژیک بود هنر مدیریت استراتژیک برمیگرده به تجربه ب و تحلیل مدیر از سازمان و نکته بسیار مهم دوستان بهترین استراتژیست سازمان مدیر سازمانه مدیر سازمانه که میدونه سازمانش چجوری باید جلو بره نقاط قوت سازمانش چیه نقاط ضعف سازمانش چیه و اینو ما میگیم هنر مدیریت استراتیجیک که عبارت از تجربه مدیر در رابطه با مدیریت استراتژیک. بله جاکر میگه what can't be measured, can't be done or can't be managed هر آن چیزی که اندازگیری نشه بعد مدیریت هم شما نمیتونی بکنیم انجامش هم نمیتونی بدی مدیریت یعنی اندازگیری ما در فرایند و مدیریت استراتژیک هم سعی نیکنیم که اندازگیری رو به نخبه اکثر انجام بدیم و از طریق اندازگیری که سازمانمون رو مدیریت کنیم، کنترل کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی ممكنه در سازمان ما بی افتید دقت بکنید دارای روش‌های ارزیاده عملکرد سنتی در گذشته تردیشنال یا نگارش‌های سنتی یه سازمان و مثلا می‌خوام بگم آقا یه سازمان داره خوب عمل می‌کنه یا بد عمل می‌کنه بیشتر به شاخص‌های ارزیابی مالی و اتفاقات گذشته بر اساس ارزیابی مالی و اتفاقات گذشته منی سازمان اندازه‌گیری می‌کنه دید سنتی رو عرض می‌کنم تو خیلی از شرکت‌های ایرانی هم همینه دیگه مثلا حسابرس میاد بر اساس گزارشاتی که از واحد مالی میگیرن صورت‌های سود،, سود و زیان صورت‌های بودجه چه میدونم پارت بگید بالانس شیت خب یا مثلا ترا آره بالانس شیت میشه تراسانه خب. آره. خب یا مثلا جریان نقدینگی کش فلو استیتمنت میاد میگن آقا این سازمان الان داره خوب عمل میکنه یا خوب عمل نمیکنه الی یادتون باشه من در درس مدیریت اگه یادتون باشه تو قسمت هدایت directing فرق رهبر با مدیر رو من بهتون گفتم یه فرق اساسی که رهبر با مدیر داره مدیر bottom رو نگاه میکنه ولی دید رحبر horizonه horizonه eyes the horizon خب گفتم مدیر bottom رو نگاه میکنه مدیر فقط سود و درامد نگاه خب؟ یعنی نگاه اشتگاه مالیه ولی رهبر وقتی میگیم آیشد هوریزل یعنی به های دیگری هم در سازمان توجه میکنه فقط به سود و زیان توجه نمیکنه و دقیقا مشکل اساسی که من بعضا تو سازمان خودم دارم همینه و خیلی بده میداری بدترین درد چیه شما حاصل یه چیزی رو میدونین ولی نمیتونین اجراش بکنین این بدترین درد، حالا ما قاست نمیدونین، اجرام دارین میکنین، او زیاد بت‌ها مثلا سخت نمی‌گیرن سخت نمیاد ولی وقتی تو می‌دونی و داری اجرا می‌کنی این خیلی خیلی دغدناچه‌ ما الان سال 93 درآمدمون و طبیعتاً نه درآمد ببین درصد سود خالصو راحت درصد سود خالص که ارتباط مستقیم داره با درآمد خزینه دیگه خب نسبت به سال گذشته کاهش داشته خب هیئت مدیره رو این دست گذاشته. این نگاه لاین دیگه. آقا راندمان در سازمان اومده پایین. لذا پس بعد مدیریت خزینه کرد، کنترل کرد،, کرد، چی کرد، چی کرد، چی کرد. در صورتی که این نگاه ما نگاه سنتی میگیم، اوکی. شما اگه به درصد سود خالص نگاه میکنی الا بر این نگاه باید به عوامل دیگری هم در سطح سازمان نگاه بکنی. ممکنه من درصد سود خالصم اومده باشه پایین. ولی نسبت به سال گذشته من توسعه بازار بیشتری دادم. سال گذشته با 5 تا مثلا بازار کار میکردم الان با 15 تا بازار دارم کار میکنم. وقتی شما میخواید مارکت دیوولپمنت انجام بدهید چه بحث مارکت پنتریشن انجام بدهید توسعه بازار رو در بازار این برای سازمان هزینه داره. میدونی؟ اینا مواردیه که ما در مدیریت استراتژیک باید بهش توجه بکنیم در مدیریت استراتژیک فقط نمیتونیم دید سنتی داشته باشیم دید سنتی یعنی ارزیابی بر اساس خروجی های مالی که این غلطه میارهای ارزیابی با میار معاید ارزیابی معاید ارزیابی با میارهای متمرکز بر بحث مالی چه معایدی داره؟ میارهای سندش امدتر کوتاه مدت و غیر استراتژیکه. شما اگه فقط بخواید به درصد سود خالص تاسازمان یعنی خروجی‌های مالی توجه بکنید این این نگاه نگاه غیر استراتژیکه نگاه مالی نیست همیشه نکته‌ای هست مدیران مشکل دارن با مدیران مالی اگه در تو سازمانت مشکلی با مدیر مالیتون دارید و ندارید همیشه یک کانفلیکت بین مدیران سازمان مدیران سازمان و مدیر مالی هست همیشه مدیر عامل سازمان حالا ای مدیر سازمان دیدش دیده مالی نباشه یعنی مدیر مالی خودش نباشه ممکن دیدم مالی هستش با مدیر مالیم کنار میام یعنی باش باید کنارم اومد چون اولی زرده که مدیر عامل میخوره از مدیر مالی میخوره اینو مطمئن باشید و اولین کانفلیکت کانفلیکت خیلی میجرم هم بین مدیر و مدیر مالی به وجود میاد من الان 4 ساله تو پاکستان سال من مدیر یه شرکتم تا حالا دوبار مدیر مالی من کرده مجبور شدم عوض بکنم به خاطر اون هایی که به وجود اومده. و خب عوض کردن مدیر مالی هم بهنخرهی سری توهاتی برای سازمان داره. یه سری ضرباتی رو سازمان میخوره چرا؟ چون نگاه مدیر مالی خیلی خطیه. خیلی خطیه بر اساس اعداد و ارقامه. ولی نگاه مدیر عامل علاوه بر خب مسلماً واحد خطی دیگر هم داره می‌بینه، تولید داره میبینه تقو تسری رو بازار بازاریابی رو می‌بینه. این خیلی بحث دیگه، می‌دونید؟ و بعدی ارزیابی ها عمدا یک بودیه بله ارزیابی مالی یک بودیه فقط عدد رقمو داره میبینه فقط عدد به رقمو داره میبینه ارزیابی ها فقط اطلاعات حسابداری متکی است و متغیرهای مهم مانند کیفیت نوآوری رضایتمندی مشتریان بحث برندینگ در آن به چی شما لحاظ میشه شما در صورت های مالی تو در پی اند شرکت سود و زیان چی شد ترازنامه. ترازنامه خب شما بحث کیفیت نمی نمیبینید بحث نوآوری رو نمیبینید بحث رضایت مندی مشتریان رو نمیبینید یا به عبارت دیگه خیلی جالبه شما وقتی منابع برای سازمانت خریداری دارید می دستگاه می خری این توی ترازنامه دیده میشه دیگه درسته؟ تحت دارایی داراییهای سازمان و بلاک هزینه خزینه استهلاکشان در سود و زیانت ثبت میشه داود خانمحمدی بهتون گفته دیگه خب حزینه های استلاله که هم توی میشه آیا این منبعی دیگه بایتا سبتاً بشه آیا منابع نامشهودتون هم سبت میشه؟ نه شما وقتی که مثلاً فرش کنید یک دانش برای سازمانات خریداری میکنید اصلاً زمان میذارید یک دانشی برای سازمانات خرق میشه دانش هم یک منبعی مطور منبعی نامشهوده و بر اساس گفته آقای کاتلر و منابع نامشود بسیار بسیار بسیار, بسیار عرضشمند تر است از منابع مشهود اینم بعد در صورت های سود و زیانه، در ترازنامت و صورت مالی ثبت بشه ولی متاسفانه ثبت نمیشه تو خیلی اشکه هنوز، هنوز به قول معرف مرسون نشده در ایران اصلا سرفستی برای این کار وجود داره اصلا سرفسته ولی در قوانین حسابداری هستا در قوانین حسابداری تحت وجود داره که شما مثلا دانشی اگه برای سازمان خلق می‌کنی این به یک منبع نامششود بعد کرییت بشه و از این استنشن براتم براش در نظر گرفته بشه تو صورت‌های سود و زیانت هم دیده بشه و خیلی چیزهای دیگه ولی واقعیت هم دید مالی خب این چیزها رو نداره عدم توانایی آنها در ارزیابی دارایی‌های نامششود ربابه به مشتریان اوکی شما ممکنه تو پیاندلت درآمد داشتی زیان داشتی خزینه داشتی به یه سود زیانی رسیدی خب، تو به عزیزت هم روابط با مشتریان تو ممکن توسعه داده باشی برند سازمانات عرضشش رو بردی بالا میدونی چی دارم میگم؟ چه بس ها اینا هیچ کنون بسته میشه سال 93 در ماهیسه با 92 درسال سود خالص من کاش پیدا کرده اوکی؟ ولی ممکنه عرضش برند من افزایش پیدا کرده باشه عرضش برند ارتباط مستقیمی داره با ارتباط با مشتریان شما عرضش برندم فوق العاده مهمه ارزش برند اپل الان هفتادا پنج میلیارد دلاره تو <تص> ایران هنوز مرسوم نشده همونتا واسه خود اونایی که صاحبانه برندن خودشون بیمتگذری میکنن ولی مرسوم هنوز نشده ولی واقعیت همش مهمه ها باید بهش تقجب کرد روابط و مشتریان محصولات، خدمات بدی، کیفیت بالا، فرآیند عملیات پاسرت تکنولوژی، پایگاره ابتداطی، مهارت هنگیزه کار کنن یه سازمان ممکنه سودش بالا باشه ولی پرسونل لویالی نداشته باشه من امسال معمور شدم از سمت حیط مدیره خب تخصص دارم تو این کار که حضینها رو بیارم پایین <تصفح> حضینها رو ضربتی بیارم پایین البته از تحلیلشون درست میگم اما وضعیت مملکت خیلی نابسامانه خیلی هم نابسامانه افتزاهه افتزاه یعنی من هیچ سالی قبل از عید اینجوری تحت فشار نرفتم دیشب ساعت 12 شب دیدم اسمس برای من اومده یه مشتری برای من اسمس زده که فلانه این پول ما چی شد؟ که من ساعت 12 شب خونم حالا بچه خواب بود رفتم پایین تو پارکینگ تلفنشو گرفتم با صدای بلند هرچی از دهنه دردش گفت مردده اسم من به تو نگفتم به من MS نزن. تو وقتی MS میزنه هم خودت تو تو درد سر میزی من تو درد سر میندین من پول ندارم گفتم به درک پول نداری گفتم با این حرکت هم خودت تو داره تو هم سر من تو درد سر, میزه هم منتو درد سر الان یه بلی به واقعیتی وجود داره. من از سه هفته گذشته تا به الان وحشتناک تحت فشار بودم. یعنی شما، باسکول از ای تازه هر کی که فکرشو کنیم پیگیر پولش از ما بوده اوکی قبل از این ای norme ولی امسان خیلی شدت پیدا کرده چرا چون پول تو دست مردم نیست نقدینگی اومده پایین خیلی اومده پایین خب بله هیات مدیره گفت بورو از اینا رو کنترل کن هزینه ها رو ما کنترل میکنیم مسلما کنترل میکنیم چرا واسه سودمون هم امصار بالاتر بشه ولی از اون طرف ممکن مهارت و انگیزه کارکنان رو از دست بدید و انگیزه کارکنان یک منبع فوق العاده ارزشمند برای سازمان فوق العاده ارزشمنده ولی به راحتی شما اینو میتونی دست بدی می دیگه مثلا من الان من حالا آه... آه... از اون طرفم ما تکنیکایی ام باز از تجربه خودمون سر کلاس آموزش ببینیم من وحشتناک فشار آوردم به واحد مالیمون از ده ما که با کل پرسنل تسویه کنید اینا قاعدتاً وقتی تو مشکلات نقدی نقدینگی، مدیر مالی میگه آید دکتر مشک مشکل نقدینگی ما مثلا فلان تامین کننده که میزنه زنگ پول اونو بدین. حالا انا پرسنل که درخواست سنوات ندادن که چون میگه همه سنواتشون رو کنی کنیم گفتم همه رو تصویر کنیم سنوات، پاداش، ایدی من میخوام بعد از اید که اومدم همه صفر باشن صفر صفر. می‌دونید چرا؟ چون من بعد از هنوزم روش فکر نکردم تو ایام اد حالا روش فکر میکنم. به احتمال زیاد من هفتاد هشتاد درصد از پرسنلمو حقوقشون هم نمیخوام افزایش بدم یعنی حتی افشا شه هم نمیخوام بدم. آنلاینه بذارنتو کاری میگه 15 درصد چند درصد شده؟ امسال هنوز ابلاغ نشده یعنی رو 14 15 درصد که میرن چلو افزایش نمیدم دیگه. چون تصفیه کردم باشه کامل. <تصحنت> خب اینا قاعدتاً انگیزه پرسنل از بین میبره. لویالتیش از بین میبره. ولی چهاره اینید، و این دید میشه دید مالی که من خودم هم میدونم اشتباهه ولی ما در دید استراتژیک یا دید گوبال مدیریت استراتژیک میگم اقا تکبودی نباش، بودی باش همه چیز باتم لاین نگاه نکن باتم لاین، گفتم تو مدیریت، یعنی درآمد سود درامت، از اینه سود، یا سود، باطم لاین یعنی سود دیدت فقط باتم لاین نباشه، به ابعاد دیگه یا دفترت سازمان توجه بکن. خب اینا رو که من جلسه اول گفتم حالا بریم ببینیم منظر بیستی چیه بلنس اسکور کارت ارزیابی متوازن بلنس اسکور کارت کارت ارزیابی متوازن یا نگارش در حقیقت ارزیابی متوازن رنشیست که در آن استراتژی سازمان به یک سری شاخص‌های عملکرد قابل اندازهگیری شده پیوند خورده و ترجمه شده و از طریق اجرای آن سیستمی برای سنجش تحقق استراتژی و مدیریت استراتژیک ایجاد شود. دقت کنید در کارت ارزیابی امتیاز متوازن ما میایم علاوه بر سود که با عنوان یه شاخص در سازمان شاخص دیگری رو هم در سازمان خلق میکنیم خب که این شاخص ها عملا ترجمه برنامه‌های استراتژیک ماست ترجمه برنامه‌های استراتژیک ماست که در سازمان اندازگیری بشه و کنترل بشه عملاً با این روش ما داریم استراتژی رو اجرا و کنترل میکنیم دقت بکنید کارت ارزی امتیاز متوازن چیه کارت ارزی امتیاز متوازن تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل هر ما شما لاو تا اینجا گفتیم دوستان با شما تو استراتژی کلان و تجاری و اینا خب تو کارت ارزی امتیاز متوازن ما اینو به عمل تبدیلش میکنیم اجرایی میکنیم در سطح سازمان تو از ابزارهای مهم مدیریت استراتژیک، جت کنترل مدیریت. خیلی ساده شما با این میتونید میتونی سازمانو مدیریت کنی و کنترل بکنی و بیا دفاع بکنی از سازمانت. مثلا بفرض مثال منابع انسانی ما میخواد بگیم منابع انسانیمون در سازمان داره خوب عمل میکنه یا خوب عمل نمیکنه. چه جوری میتونیم بگیم؟ دوستان بر اساسی یه سری شاخص بازار رو میخوام میگیم خوب داره عمل میکنه یا خوب عمل نمیکن چجوری میتونه میگی بر اساسی یه سری شاخص ماجید. ماجید. یا به همون صورت تکنیک جد عملیاتی ساختن آرمان نباییم استراتژی های سازمان یعنی هران چیزی که ما در لایه اول یا دوم سند استراتژیک نوشتیم این تکنیک میان عملیاتیش میکنه تو لایه پایین تر صرفا نقش کنترلی نداشته و میانه ها برای توصیف فهمت کرده گذاشته به کار نمی ابزاری جد تبین استراتژی سازمان که با همه اینکه در سوتوی مختلف سازمان امکان دستیابی به اهداف سازمان را میسر میسازن نکته مهم استراتژی را به کلماتی ترجمه میکنن که برای کارکنان سازمان در فعالیت های روزمرهشان محنیدار میشوند ببین ما تا امروز هرچی که گفتیم لغات کلنبر سولنمی استراتژی بود یک پارچه عمودی رو به عقب یک پارچه عمودی رو به جلو توسعه بازار رسوخ در بازار این بحثهایی که در کلاس مدیریت استراتژیک میشه اگه شما اینو میخوای تو سازمان اجرایش بکنی باید زبان قابل فهم برای پرسنل حرف بزنی درست یا نه مثلا بیای به مدیر تدارکات بگی آقا ا چه مدنام یک پرچه عمودی رو به میگه بولو بابا ببینم یک پارچه چیچیه چیچی تو من برخورد کردم با این شرایط خب میگه بابا یک چیچی چی بگم بخمم آقا مثلا بازرم میگه آقا با خیلی ها صحبت میکنه آقا مثلا با لغت ساده صحبت کن تو مدیریت هم همینه ما میگیم آقا هران چیزی که ما طراحی کردیم برنامه‌ریزی کردیم بیای ترجمه کنید به زبان ساده به زبان قابل فهم برای پرسنل و اصلا من به مدیر منابع انسانی نمیگم از سردخشی واحد شما چه اتفاقی افتاد کاراییتون تو چه اتفاقی افتاد نه خانم اینکس میتونه به من بگی از تعداد نیروهایی که سال تو استخدام کردیم چند درصدشون استفاق کردن این قابل فهمه بایش این قابل فهمه یا به مدیر تدارکات به جای یک پارچگی عمودی رو به اقل من بهش میگم که اوکی، من تعریف تا یک یکی عمودی رو به عقب. برای مدیر تدارکات تعریف میکنم که ببخشید آخ ایکس، شما نسبت به سال گذشته چند تا تامین کننده اضافه کردی به سازمان. اونم یک پادچگی عمودی رو باه. دیگه وقتی که تو تعداد تامین کنندگان تو داری افزایش میدی، یعنی داری برون سپاریت افزایش میدی. از این طرف من بهش میگم چند تا تامین کننده رو اضافه کردی. نمیگم جزئیات برون سپاری چجوریه. میگم چند تا تامین کننده از اضافه کردی. یا به واحد آرندی، نمیام بگم وضعیت اتقام عمودی تو به من بگو میگم آقای آرندی، آقای تحقیق توسه، چند تا دستگاه خریده که سال گذشته خب؟ یعنی ببینید استراتژی را به کلماتی ترجمه می‌کنند که برای کارکنان سالان در فعالیت روزمرهشان معنیدار می‌شوند و بعد ارتباط معنیداری بین های نامشود، برن، جورل، و, و غیره با عهداب استراتیجی‌ حالا جه کنید چشمنداز و رسالت ما یه سری استراتژی در سطح کلام شرکتی نوشتیم استراتژی های کلام شرکتی خب چند استراتژی بود 12 12 یا سیزده. تا یه تعداد استراتژی در سطح تجاری نوشتیم استراتژی های تجاری شرکتی که حدود 20 تا بود درسته؟ رهبری هزینه و تمایز. خوب. حالا سی‌کیف استراتژی اینجا شما نوشتی. حالا می‌خوایم بریم تو سازمان اجرا کنه. با نگرش بالانس اسکور کارت کار می‌کنی؟ بالانس اسکور کارت یه نگرشی داره. میگه قبل از اینکه این استراتژی رو ببری تو سازمان اجرا کنی، سازمان رو تو بیاری به چهار قسمت تقسیم بکن سازمان تو بیا به چهار بخش تقسیم بکن خب؟ چهار بخش بخش یک، بخش دو، بخش سه و بخش چهار خو؟ خب؟ بخش یکو اسمشو گذاشته رشد و یادگیری اعتقاد بل از کارت اینه که در سازمان پله اول یعنی اگر سازمان شما به شکل یک درخت ببینی ریشه این درخت رشد یادگیریه. اگر رشد یادگیری اتفاق بیفته شما میتونید وارد مرحله بعدی بشی <تصفح> میگه پله اول رشد یادگیری. شما به من میگی وقتی رشد یادگیری تو سازمان اتفاق میفته بر چه اتفاقی تو سازمان میافته؟ <تصفح> ما میگیم وقتی رشد یادگیری در سازمان اتفاق میافته توسعه فرایند در سازمان اتفاق میافته یعنی بلنس اسکرکار میگه مرحله دوم یا قسمت دوم از سازمان توسعه فرایند ها درسته؟ بعد که فرایند توسعه پیدا کنه مرحله بعدی چیه؟ آه؟ کیفیت کار میره یا رضایتمندی مشتری افزایش پیدا می‌کنه. درسته؟ مرحله بعدی رضایتمندی مشتریان وقتی که رضعتفند یه مشتری بره، بالا چه اتفاقی میفته؟ خروجی مالی، یا هفصای شسورد، ما میگو خروجی مالی خب؟ یعنی برای از اسکورکارت میگه سازمان رو بیا به چهار قسمت تقسیم بکن رشد و یادگیری جهت اطلاع توی میشه لرنینگ اند growth. لرنینگ اند گروف processes توسعه ها customers مشتریان و finance یعنی مالی خب سازمانت میاد به 4 قسمت تقسیم میشه از استراتژی هایی که در سطح کلان شرکتی یا تجاری تعریف کردی استراتژی هایی که در این سطح تعریف کردی خب متوجه هستید بعضی میونه تو رشد یادگیری میشینه بعضیش میاد تو توسعه ها بعضیش تو رضایت مندی مشتریان، بعضی‌اش تو خروجه مالی میشینه مثلا مثلا مارکت دیولاپمنت توسعه بازار، به با معنی استراتژی، به معنی استراتژی. مارکت دیولاپمنت به معنی استراتژی. تو کدوم یکی از اینا می‌شینه؟ استراتژی، تو مارکت دیولاپمنت توسعه بازار. بازار. بازار که فرض کنید شما تو استراتژی کلان شرکتی رو تعریف کردید تو کدوم که از این منظرا میشینه؟ از منظر از از مشتری ازت مشتری. مشتری. توسعه بازار میره به سمت مشتری هم درسته؟ ادغام عمودی بکورد Integration اینتگریشن استراتژی. ادغام عمودی، تطابق عمودی رو به عقب یا رو به جلو. اگه تو استراتژی کلان شرکتی تریپت تو کجا میره میشینه؟ درسته. چه رسته؟ تو سفر ایتا زیر ساخته؟ یا استراتژی کلان شرکتی تعریف کردی استراتژی کلان شرکتی تعریف کردی مثلا فرض کن تو توزت تو توز خب خوب تعطومانه اخس وام تو کجا میری میشین؟ تو مادی میری میشین؟ متوجه شدی؟ یه استراتژی کلان شرکتی تعریف کردی متوجه ج... به نام آ... آموزش پرسنل کجا میشین؟ روشنیاد رو کردی؟ اینو اول بیاد هم داره. نه یک دو،, یک دو سه چار هم اینجوری هم یعنی اون بعدش این بعدش آره آره آره زنجیره بارم در استراتژی تجاری تعریف کردی رهبری حزینه و به قول معروف برنامهی داشته باشی به کاهش استعفای نیروی انسانی رو داشته باشی تو کجا میره میشینه؟ مالی میشین کاهش استعفای نیروی انسانی که باید حزینه هم کاهش استعفا میشه استعفا باشه قاسه چیه <تصفيق> مالی مالی میتونه تو مالی هم بشینه تو <تصفيق> <تصفيق> می چی میخوام یعنی اینو میخوام بگم استراتژی که شما تعریف کردی در منظر بالانس اسکور کارت بعد ببینین استراتژی تو کدومی که از این منظرا میشینه و مسلما تو یه کدوم از این منظرا میشینه خب این رو که الان من پای تخته براتون نوشتم بهش میگن نگرش بالانس اسکور کارت یا کارت احزابی هم چاوزه متواسه پی اس سی یا بالانس اسکور کا خرف. فقط مزیت رقابتی هم رقابتی در تضمینی مشتریا با میشه؟ مزیت رقابتی؟ بله. ما یه ما یه استراتژی تعریف کردیم. نه نه نه، همینجوری میخوام بگم. اون ما یه استراتژی تعریف کردیم. بعد مزیت رقابتی استراتژی نیست که مزیت رقابتی یه مفهومه. مزیت دیفرنسیال تمایز. تمایز ملخصی. بسیاری داره مثلا تمایز فرض کنه چی تعریف کردی مثلا تو سازیر سات تعریف کردی؟ آه من جواب. میاد تو سفر کردی؟ سفر نه سفر. مثلا تو CRM مثلا. آه CRM میاد مشتری میاد مشتری. ممکن آره مثلا استراتژی تمایز شما کاستومر ریلیشن منیجمنت باشه مدیریت ارتباط با مشتری باشه میاد کجا میشینه؟ نه مشتری خلاص. میبینی؟ نه. ای بابا. خب، یه شیتی رو من دو تو فولدرتون گذاشتم. به نام شیت بالانس اسکور کارت، کارت ارزیابی امتیاز متوازه یه اکسل. کوچیکش کنم من یه مقدار. خب؟ یه اکسل. بوزو کرکی بدی. می‌فهمی؟ ما آمدید حالا این استراتیجی همون توی این باکس ها قرار دادیم چه کمکی بماندید کنیم؟ اجازه ردید میلیم رو آره. رو پس های پله ای اول من فعل صفه یا آنی من دستم فعل صفه بی سی رو آره به تو کنیم ولی حالا آره چجوری می‌خوایم اجران کنیم؟ اکسل داشته باشیم ببینید این Excel بهش میگن اسکور کارت شیت یا شیت اسکور کارت توی اینترنت برید انواع و اقسام شیت های کارت ارژبی امتیاز متوازن هست منطور مرتبه خودم اینو حالا بر اساس تجربه و اطلاعات مختلف که جای متفاوت گرفتم اینو ما کرییتش کردیم خب؟ اولا من یه نکشته رو خدمتون بگم اینو پاک کنم خو؟ خب دقت بکنید ما چهار کانسپت داریم. چهار کانسپت میخوام خدمتون بگم یک استراتژی کلان شرکتی، درسته؟ این کانسپت شماره یک های کلان شرکتی کانسپت شماره یک استراتژی کلان شرکتی مثل چی بودش؟ اتقام عمودی روبه رو روبه جلو اتقام افقی درسته؟ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول طلب و پذیری همگر، غیره افقی، کاهش، بروسپاری، انحلال. درسته؟ اینا اینا استراتژی های کلان شرکتی، کانسپت شماره یک دو استراتژی تجاری شرکتی، درسته؟ تجاری شرکتی استراتژی تجاری شرکتی مثل چی میمونه؟ تمایز، رهبری ازینه تمایز کانونی، رهبری ازینه اینه، کانونی یا ازینه. خب؟ کانسپت شماره سه تاکتیک خب؟ کانسپت شماره چهار آه چهاره میگم. تاکتیک یعنی چی؟ به ما یه استراتژی داریم دقت که ما تو مدیریت گفتم ما یه استراتژی داریم یه برنامه داریم استراتژی میشه کانان شرکتی تجاری شرکتی برنامه میشه تاکتیک, تاکتیک یعنی چی ؟ این برنامه های کوتاه مدت یعنی برنامه های کوتاه مدت؟ اوکی؟ برنامه های کوتاه مدت فوتباله است برو چی چی؟ تو یکی دید با تکنیک با تکنیک ننده مدیریت. نه. او فوتباله. نه. یه تاکتیک داره یا تکنیک داره. اینجا گفتم تاکتیک یا برنامه. برنامه‌های کوتاه مدت تاکتیک مثل چی؟ یه مثال برای من بزنید. برنامه‌های کوتاه مدت درصت یک سال با. وقتی میگم برنامه‌های کوتاه مدت یعنی کمتر از یک سال. دقت بکنید. کمتر از یک سال. کمتر از یک سال. اوکی استراتژی کلان شرکتی یا تجاری که من میگم یعنی بیشتر از یک سال خوب چه بعد اونم کمتر از یک ساله مثال بزنید خرید دستگاه فروش زایی خرید دستگاه خرید دستگا چرا میتونه الان یعنی یه خرید دستا یکم کمتر از یک سال طول می فروش زایا یا مثلا فرض کنیم فروش زایا فروش زایا تام یعنی یه زایات بخوای بفروشی چند یک سال طول می کشه دور طول کنید <تصفيق> حالا تو از یه روز تا یک سال اینقدر رو گرفتیم <تصفيق> خب شما مثلا فرض بفرمایید تعداد نیروی بازاریابی تو از دو نفر میخوای بکنی پنج نفر میخوای بکنی 10 نفر اینو ظرف یه سال میتونی انجام بدی اینو بهش میگن برنامه تاکتیک یا یه موقع است بله یه دستور میخواد برای سازمانت خارجیه میشه برنامه تاکتیک یه موقع است مثلا میخوای پاداش یه پاداشی به پرسنل ظرف 6 که روی پروژه دارن کار میکنن که بونه ما و راندمارشون بره بالا این چه برنامه تاکتیک اوکی شماره چهار کویک فیکس کویک فیکس یعنی چی یعنی خیلی سریع و کوتاه سازمان به مشکل نقدینگی خورده مثلا با 1000 دلیل علی مخاطره وام بانک بگیری وام مثلا با بهره خیلی خوب بگیره دستور میده آقا برو وامو سریع بگیر واحد مالی این میشه کویک فیکس دیگه برنامه ساختن دیگه نه استراتژی خب یا مثلا اومدیم در واحد انبار به این آچه رسیدیم شما به عنوان مدیریت ارشد سازمان آقا سه نفر دارن کار با یه نفر اضافه است یه نفر اضافه جذب شده یه دفعه سریع آن کنید. تبدیلش کنید به دو نفر. این میشه کویک فیکس. یعنی یک برنامه خیلی سریع و کوتاه. پس ببینید استراتژی ها رو ما یا برنامه ها رو در چهار لول کاتگورایز کردیم. استراتژی کلان شرکتی، تجاری، تاکتیک، خیلی سریع و کوتاه کویک فیکس. کنجور نگیم؟ گلر نیست شده الان میدام شد بعدی نکشه بعدی نه نمیسیم اینها دیگه چرا؟ بعدی می‌تونید به من بگیر فرق گل در مدیریت با ابژکتیف با تارگت در چیه؟ هدف می‌شه گل می‌شه هدف بعد ابژکت می‌شه تصمیم‌گیری هنگی‌گیشه باده تارگت هم هدف دیشه باده گل هدف می‌شه باده ابژکتیف هدف عینیه تارگت هم هدف کتاب عدد می‌تونه باید بیشتر فکر می‌کنم منظورت چی بود؟ حدیف عینی؟ اهداف عینی یعنی چی؟ مرمو یه حدی نزدیک شدیم ببینید goal objective target هر سه تاشت دو دیکشنره رو میده به معنی هدفه خب بینید در مدیریت با هم فرق می‌کنه خب؟ اهداف بلند مدت رو بهش می‌گن goal بلند مدت خب؟ بولان مدت هدف اندازه‌گیری شده رو هدف اندازه‌گیری شده رو بهش میگن ابجکتیو خب تارگت اهداف سالانه میشه خب داستان این چیه؟ بیان چی اندازه‌گیری شده؟ آره ها کنم خب اهداف بلند مدت گل هدف اندازه گیری شده ابژکتیو اهداف سالانه تارگت فرض کنید هدف ما گول ما افزایش رضایتمندی مشتریان این هدف افزایش رضایتمندی مشتریان خو خب؟ بله در بلند مدر اص سازمان گولشه اون هدف اصلیشه که افزایش رضایتمندی مشتریان رو داشته باشه خب ابجکتیو افزایش رضایتمندی مشتریان حداقل سی درصد حد تا سی درصد همون جفتشی را مشتری ای این سی درصدی که میزنیم یعنی هدف اندازه گیری شده این... سی درصد چی؟ سی درصد کل مشتریان یعنی آره؟ آره؟ آره؟ آره؟ آره؟ آره؟ آره؟ سی درصد مشتریان همونه از آن چیزی که از سی درصد هم راضی بشه مثلا اگر پنجا درصد راضی هم درصد متوجه هستی؟ هدف سالانه من میخوام چقدر ریاضی کنم؟ حداقل سی درصد افزایش بدم رزتمندی مندی حداقل 30 درصد افزایش بدم. حداقل سی درصد افزایش بدم. سال 1394 سال 1395 سال 1396 خب سال 1395 رضایتمندی مشتریان ما برسه به 70 درصد خب 95 برسه به 80 درصد متوجه هستید 96 برسه به 100 درصد درست, درست می‌میاد الان این چقدر افزایشه 10 درصد این چقدر افزایشه 20% درصد. چرا افزایش شد 30 درصد؟ این کانسپت گل آبجکتیو و تارگت در سازمان متوجه داستان چی شد؟ داستان متوجه داستان چی شد دوستان؟ خب کانسپت بعدی بکنم؟ یه کانسپت دیگه داریم ما به نام استراتجیک تیم موضوع استراتژیک استراتژیک تم چیه یا موضوع استراتژیک چیه کنید استراتژی شما در سازمان استراتژی کلان سازمان یا کلان شرکتیتون چیه ادکام عمودی رو به عقب ادغام عمودی رو به عقب گفتم در بالانس اسکور کارت خدمتتون عرض کردم اینو بعد به زبان ساده ترجمه کنیم استراتژیک تیم زبان ساده یک استراتژی خوب استراتژی کلان شرکتی ادغام عمودی رو به عقب یک سازمان خوب موضوع استراتژیکش موضوع استراتژیک این داستان متوجه هستید موضوع استراتژیکش میتونه خرید ماشینالات باشه میتونه دو مدیریت ارتباط با تامین کنندگان باشه یعنی ما در رابطه با موضوع استراتژیک میان هر چیزی را که در استراتژی کلان شرکتی نوشته شده به یک زبان ساده ترجمه میکنیم. اوکی؟ متوجه شدید چی شد؟ ممکنه؟ استراتژی کلان شرکتی توسعه؟ بازار باشه خب موضوع استراتژیک موضوع استراتژیک بازارهای تهران مشهد احواز شیراز یعنی میای عملا مفون سازی می کنیم اون چیزی را که ما تمام استراتژی نمیشیم به زبان قابل فهم برای سازمان سوالی هست دوستان کلیره براتون کلیر شد مورد بعدی باشه. این چی؟ نه فقط توی یک بازار توزیع محصول فقط توی یه بازار دیگه آره نه بازار محصولات مختلف محصولات توزیع محصول محصولات مختلف برای یه بازار برای یه بازار آره من صارم بچ این یه مدیر تیم طوره تایمینگ کنه این استراتژی اون ها بله میتونه باشه خب <تصفيق> لک لیت لک لیت لک خروجی اصلی سازمان یا شاخصهای اصلی خب لید شاخصهای پشتیبانی یا هدایتگر لگو بهش میگن آت کن لیدو بهش میگن درایور. مثال شاخص ها در سطح سازمان به دو گروه تقسیم بنده میشن یا لگن یا لیدن شاخصهای های شاخصهای اصلی سازمان ها. خروجی سازمانه ها. شاخصایی که همه میبینن زینفان دارن میبینن یا به عبارت اون باتم لاین ها هستن باتم لاین هستن ولی لید ها شاخص های هدایت گرم ها هستن برای شاخص های اصلی مثال سود لگه یا لیدن لگه لگی بله تحویله به موقع لگی یا لیده مم. لیده چرا تحویله به موقع داری که بعد سودو داشته باشی رضایتمندی مشتریان لگی یا لیده لگی. لگه برند لگی یا لیده لگی. لگه توصیه تجهیزات لگی یا لیده لی. لیده درآمد لگی یا لیده لگه, لگه. اصلا بخش دورهای آموزشی، ایده. لحی یا لیده؟ ایده. لیده ایده. لیده ایده. لیده شد، داستان چی شد؟ ببین شاخصهای سازمان، خب؟ که قراره اندازه گیری بشه اهداف سازمان به دو گروه تقسیم یا لگی یا لید لگ یعنی چه یه لغت انگلیسیه دیگه لگ یعنی خروجی اصلی سازمان یعنی هات کام خروجی اصلی سازمان لید یعنی شاخصایی که alat پشتیبانی داره هدایت کننده است برای اون شاخصهای اصلی خب سود شاخص اصلی خروجی اصلی سازمانه پس لگه خب تحویل به موقع لیده وقتی شما پروژه رو به موقع داشته باشی می‌تونی به سود و بس میشه لید، یه حمایتگره، هما... پشتیبانه خب، رضایت مشتری شاخص هست یه سازمان میشه؟ لک درسته؟ برند، لگه توصیل تجریزات، یه شاخص؟ حمایتگر دیگه، پشتیبانه بنایی رسیدن به درآمد سود و رضایت مندی پس لیده یا اثر بخشی دورای آموزشی لید دیگه، درسته؟ لا. چرا این کلومه این لید رو به کار بود؟ تا مخفف چیزی؟ نه مترادف آتکانه مترادف درایبر تو شما ممکنه بعض مواقع به جای درایبر لیت ببینید به جای آتکان لگ ببینیم اینه بخاطر این دور که من تو گفتم و اصلا خب تفکیک کردم لگ رو از لیت میدونید؟ آتکان رو از درایبر خب تا اینجا متوجه شدید؟ سخت بود تا اینجا؟ ساده است دیگه ها ساده بیست خوب... خوب... سخت این؟ نه حالی برای ما بطونم استفاده کنیم نه حله، <تصفح> کن. اون حله، است دسته